این داستان خانه ای در جنگل یکی بود یکی نبود. زیر گنبت آبی آسمون شکن فقیری در کلبه کوچیک در حاشیه جنگلی دوردست با همسر و ستا دخترش زندگی میکرد. صبح یکی از روزها که داشت راهی جنگل میشد به همسرش گفت نزدیک ظهر نهارم بده دختر بزرگتر برام بیاره. برای اینکه راه و گم نکنه من یک کیسه ارزن برمیدارم و در تمام مسیر پشت سرم ارزن می‌ریزم تا اون راحت بتونه منو تو جنگل پیدا کنه. همین که آفتاب به وسط آسمون رسید، دختر بزرگتر نون و آشی برداشت و راهی جنگل شد. ولی گنجیشکا و چاکاوکا مدتی پیش از حرکت دختر ارزنها رو خورده بودن و اون نتونست راه رسیدن به پدرشو پیدا کنه. خوشبختانه راهش را در جهت درستی ادامه داد و تا زمانی که آفتاب بود تونست سرپناهی پیدا کنه. خشخش شاخه های درخت و سر و صدای جغدا در آن موقع شب در دل جنگل دخترک رو حسابی ترسوند. در میون ترس و وحشتش ناگهان از لای درختای جنگل چشمش به سوسوی چراغی در دور دست ها افتاد. با خودش گفت: حتما کسی اونجا زندگی میکنه، لابد یه جای خوابم به من میدن، به طرف نور چراغ حرکت کرد و بعد از مدت کوتاهی به همون خونهی رسید که نور از پنجرهاش بیرون میامد. در زد صدای خشنی از درون خونه شنید که میگفت بیاتو، اون وارد یه راهروی باری باریک و تاریک شد و در اتاقی رو زد، باز همون صدا رو شنید که گفت بیا تو. وقتی در اتاق رو باز کرد، پیرمردی رو دید که پشت میزی نشسته و چونش رو روی دستاش گذاشته و ریش سفید و درازش به زمین می رسید. نزدیک اجاق یه مرغ و خروس با یه گاو ماده خالخالی نشسته بودند. دختر جوون درباره مشکلش با پیرمرد صحبت کرد. و از اون پرسید که آیا می تونه شب رو در خونش بمونه؟ پیرمرد به جای که به دختر جواب بده رو کرد به حیوانای کنار اوجاق و گفت جوجه های کوچولو، کچولو، گاوه خالخالی، اجازه میدین امشبونو نگه داریم. حیوانا از خودشون صدایی در که یعنی اجازه میدن. اون وقت پیرمرد به دختر جوان گفت همه چیز تو این خونه فراهمه، برو به آشپزخونه و برای ما شام بپست. دختر دید هرچی برای آشپزی لازمه در آشپزخونه وجود داره بعد از اینکه یه ظرف بزرگ غذای خوب و خوشمزه درست کرد اونو روی میز گذاشت. کنار میز نزدیک پیرمرد نشست و بدون اینکه به فکر حیوانات گرسنه باشه غذاش رو سیر و پر خورد وقتی سیر شد به پیرمرد گفت: «من خیلی خستم، کجا میتونم بخوابم؟ در جواب صدای حیوانات بلند شد که میگفتند خوردی و خابیدی به فکر حیوانات بیچاره نبودی جایی برای خوابیدن و استراحت کردن میخوای ولی معلوم نیست کجا دختر جوان از صدای حیوانات سر در پیر پیرمرد بهش گفت به طبقه بالا برو و دو تختی رو که در دو تا اتاق خواب طبقه بالاست مرتب کن دختر جوون به طبقه بالا رفت، یکی از تختخوابها رو برای خودش آماده کرد و گرفت خوابید. وقتی پیرمرد به طبقه بالا اومد و دید رختخواابش نامرتبه، سرش رو با عصبانیت تکون داد و تسمهای رو که به تختخواب دختر وصل بود کشید، دختر با تختخواب به زیر زمین خونه سقوط کرد. از اون طرف بشنوید از پیرمرد هیزم شکن که به خونه برگشت و، زنش رو سرزنش کرد که چرا تمام روز اونو گرسنه نگه داشته زنش گفت تقصیر من نیست دختر رو به موقع با قضات فرستادم. لابد راه گم کرده حتما فردا برمیگرده. روز بعد قبل از طلوع آفتاب هیزم شکن راهی جنگل شد و از زنش خواست که این بار دختر دومش رو بفرسته او هم گفت من یه گونی تخم کتون می برم و سر راه هم می ریزم. سخم کتون از ارزن دروشتره و دخترک به راحتی میتونه باهاش مسیر رو پیدا کنه. ظهر که شد دختر نهار پدرش رو برداشت و راهی جنگل شد. ولی مثل روز گذشته پرنده ها دونه های کتون خورده بودن و در مسیر نشونه از اونها نبود. دختر دوم هم یک روز سرگردون بود تا اینکه خونه پیره رو پیدا کرد. اونم شامی درست کرد و مثل خواهرش اصلا به فکر حیوانای خونه نبود. موقع خوابیدنم فقط رخت خواب خودش رو مرتب کرد و خوابید. پیرمرد باز هم عصبانی شد و تسمه رو کشید و دختر دوم رو هم به انبار زیر زمین انداخت. در سومین روز هیزم شکن به همسرش گفت امروز باید دختر کچیتر رو بفرستی. اون دختری حرف شن و زرنگه. حتما راه و مثل خواهرش گم نمیکنه. اون دوتا سر به هوان. همسرش اعتراض کرد و گفت حالا که اون دوتا رفتن و برنگشتن چرا باید سومی رو هم بفرستیم؟ هیزوم شکن گفت هیچ جای نگرانی نیست. اون دختر سر به هوایی نیست. زرنگه. من مقدار زیادی نخود که درشتر از تخم کتونه با خودم میبرم و طوری در مسیر می ریزم که بتونه مسیر روز بعد مادر که دل پس بود دختر کوچکتر رو که کلی نصیحت کرد همراه با نهار پدرش به جنگل فرستاد. دختر که زنبیل غذا در دستش بود از همون ابتدا متوجه شد که نوخدا در چین دونای مرغاز و تشخیص راه غیر ممکنه. خیلی ناراحت شد. دل پس پدرش شد که گرسنه نمیمونه و نگران مادرش که اگر شب برنگرده خیلی قصه میخوره. بعد از سرگردونی فراوون نوری رو دید که از پنجره همون خونه بیرون میاد. وارد همون خونه شد که خواهرش در اون بودن. با لحنی مهربون و نجیب خواهش کرد که بهش جایی بدن بموند. پیر مرد از حیوانا پرسید جوجه های کچولو، گاب خال خالی، اجازه میدین امشب اونو نگه داریم؟ جواب دادن بله، دختر به طرف اجاق رفت و دستی روی پر و بال مرغ و خروس کشید و بین دو شاخ گاو خالخالی رو نوازش کرد. پیرمرد بهش گفت که بره و شام درست کنه. دخترک هم در فرصتی کم این کار رو به خوبی انجام داد. بعد بشخابای غذا رو روی میز چید و به پیرمرد گفت: من غذا نمیخورم و این حیوانات بیچاره گرسنه هستن. دلم میخواد اول به اونا برسم بعد خودم غذا بخورم. اون وقت رفت و دور و گشت و مقدار دونه برای مرغ و خروس و یه بغل علف تازه برای گاو پیدا کرد. دختر رو کرد به حیوانا و گفت نوش جونتون بخورین تا سیرشین شاید تشنم هستین همین الان میرم و براتون آب میارم. دختر رفت و لگن بزرگی از آب پر کرد و آورد. مرق و خروس پریدن کنار لگن و نوکاشون رو داخل آب بردن بعد مثل پرنده ها دیگه سرشون رو بالا نیاوردن و آب رو همینطور سر کشیدن بعد نوبت گاو خالخالی شد رف تشنگی کنه بعد از اینکه غذا خوردن حیوانات تموم شد غذایی رو که پیرمرد براش باقی گذاشته بود خورد بعد از مدتی مرق و خروس سرهاشون رو توی بالشون کردن و به خواب رفتن پلکای گاو هم سنگین شد و به خواب رفت. دختر جوان به پیرمرد گفت حالا میتونیم استراحت کنیم. پیرمرد فریاد زد جوجه های گوچولو، گاو گاوه خالخالی اجازه میدینم شبونو نگه داریم. اونا فوری جواب دادن بله معلومه که اجازه میدیم اون به فکر خوراک ما بود. بعد دختر به طبقه بالا رفت و رخت خواب‌ها رو مرتب کرد. پیر مرد هم وارد اتاق شد و روی تختش دراز کشید. اون که روی تختش دراز کشید، ریش درازش به پاش می رسید. دختر اول دعا کرد، بعد دراز کشید و با خیال راحت خوابید تا اینکه نیمه های شب با سر و صدای عجیب و نهنجار از خواب بیدار شد. انگار تمام خونه داشت فرو می ریخت. باز می و با ضربه های محکم به دیوار می خوردن. سوتون ها و دیوارهای ساختمون صدا میکرد و پله ها بالا و پایین می شد. دست آخر صدای سهمگین همه خونه را به لرزه درآورد. انگار که خونه کاملا زیر و رو شده بود. بعد از این صدا خابید و همه جا آروم شد. حوادث آنچنان پشت سر هم اتفاق افتاده بود که دختر از وحشت توی جاش میخکوب شده بود. وقتی ماجرات هموم شد و سکوت همه جا رو فرا گرفت دختر دید که در رخت خواب خودش راحت و بی خطر دراز کشیده. برای همین دوباره به خواب رفت. پرتای خورشید صبحگاهی اونو از خواب بیدار کرد. وای که با چه منظری روبرو شد. اون خودشو در اتاق اشرافی دید. تمام وسایل اتاق رو چنان تزین کرده بودن که انگار اونجای قصر پادشاهیه. گیوارها رو با پارچه ابریشمی پوشونده بودن. رخت خوابش از جنس آج بود و روکشی از مخمل قرمز داشت. در کنار اونم یه جفت دمپایی مروارید دوزی شده گذاشته شده بود. دختر خیال کرد هنوز خوابه و همه اینا رو در خواب میبینه. در اون بحت زدگی چشمش به ست تا خدمتکار خوشلباس افتاد که اومده بودن تا اعلام کنند که در خدمتش هستند. تازه دختر باور کرد که همه چیز واقعیت داره. بعد به خدمتکارا گفت که به چیزی نیاز نداره و اضافه کرد: الان بلند میشم و میرم برای پیرمرد سبونه درست کنم و به حیوانای دوست داشتنی علوفه بدم. دختر زود لباس پوشید و به اتاق پیرمرد رفت. اما در کمال تعجب دید به جای پیرمرد، غریبه ای در رخت خواب دراز کشیده. وقتی نزدیکتر رفت متوجه شد که او مرد جوان و خوشقی جوون جوان چشماشو باز کرد و گفت نه ترس من پسر یه پادشاه هم. جادوگری بجنس منو به شکل پیرمردی مردی با موهای سفید درآورده بود. قصرم رو به کلبه چوبی و خدمتکارامو به مرغ و خروس و گاو خالخالی تبدیل کرده بود. این جادو فقط موقعی بی اثر میشد که دختری با قلبی مهربون به اینجا می آمد و با دلسوزی به خورد و خوراک این حیوانا می رسید. اون دختر تو بودی که باعث این همه دگرگونی شدی. نیمه شب که همه در خواب بودن به لطف تو همه چی عوض شد. خونه کوچیک چوبی دوباره قصر شاهانه شد و اون حیوانا دوباره به شکل خدمتکارای من در اومدن. حالا که کسایی رو دنبال پدر مادرت میفرستم تا بیان و در عروسی ما دو نفر حضور داشته باشن. دختر پرسید: پس خواهرای من کجان؟ شاهزاده جواب داد: اونا در انبار زندانیان. فردا اونا رو میفرستم در معدنا کار کنن تا یاد بگیرن با حیوانات هم باید همونطور رفتار کنن که با انسان ها رفتار میکنن. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای افسان صوتی <مسطور> نشانی کانال تلگرامی T نقط/ مهران دوستیتی نقط نشانی وبلاگ ما m r n d s t i